جیروسکوپ درونی شما سیستمی که توانایی اصلاحات مداوم را به موشک می‌دهد تا هرگاه از مسیر درست خارج شد دوباره خودش را به مسیر درست بازگرداند سیستم ناوبری کامپیوتری موشک است که قلب آن یک جیروسکوپ است شاید در دوران کودکی با یک جیروسکوپ بازی کرده باشید احتمالا به یاد می‌آورید که یک رشته نخ را دور آن می‌پیچیدید و آن را می‌چرخاندید مهم نبود که آن را چطور نگه می داشتید یا با آن چه کار می کردید تا هنگامی که می چرخید صاف و قائمی ایست نیرویی که جیروسکوپی ایجاد می کند آنقدر زیاد و قدرتمند است که حتی می تواند تعادلش را روی نوک انگشتتان حفظ کند. ژیروسکوپی که در قلب سیستم ناوبری آپولو قرار داشت، اساسا همین کار را انجام می داد. فضاپیما از نقطه الف یعنی موقعیت کنونی حرکت میکند و آزم نقطه ب یعنی ماه میشود وقتی که چند کیلومتر ابتدایی را پیمود کمی از مسیرش منحرف میشود اکنون ژیروسکوپ فضاپیما کمی انحراف را نشان میدهد و ابزارهای ناوبری فضاپیما نشان میدهند که وارد مسیر اندکی متفاوت شده است ژیروسکوپ همواره به مسیر درست اشاره میکند همان مسیری که فضاپیما قصد پیمودنش را دارد پردازنده کامپیوتر تشخیص می‌دهد که فضاپیما از مسیر درست منحرف شده است و به آن می گوید که مسیرش را اصلاح کند اگر پردازنده و فضاپیما صحبت می گفتگوی آنها چیزی شبیه این بود فضاپیما تو در یک و بیست و هفت درجه شمالی هستی به یک و بیست و نه درجه برگرد بله انجام شد خب وای خیلی زیاد شد حالا در یک و سی درجه هستی یک صدم درجه به جنوب برگرد مشکلی نیست، این کار را انجام می دهم عالیه، نه، سب کن، خیلی به غرب رفتی، مسیر تو 67000 هزارم درجه اصلاح کن متوجه شدم، الان این کار را انجام می دهم وای، خیلی زیاد شد، 12 هزارم درجه برگرد درسته، 12 هزارم درجه درست شد؟ بیش از حد به سمت شمال رفتی، آرام به 1 و درجه برگرد این کار همینطور طور تا رسیدن فضاپیما به ماه ادامه پیدا می کند و مجموعه ای از اصلاحات مداوم چیزی را که عمدتا رشتههای از شکست هاست به موفقیت نهایی تبدیل می کند. شما نیز یک ژیروسکوپ درونی دارید که به همین شیوه عمل می کند. البته اگر به آن اجازه دهید. ژیروسکوپ شما تصور شما از جایی است که میخواهید به آنجا بروید. به عبارت دیگر ژیروسکوپ شما رؤیای شماست و پردازنده شما برتری خفیف است. مجموعی از اقدامات ناچیز و به ظاهر بی اهمیت که هم انجام دادن و هم انجام ندادنشان آسان است در این مورد انجام دادن آنها شما را مستقیماً به ماه می رساند. شما احساس گرسنگی می کنید. مواد غذایی خوشمزه اما بدون ارزش غذایی موجود در دستگاه فروش خودکار به شما چشمک می ژیروسکوپ شما در حال چرخش است و روی سلامتی شما متمرکز شده است پردازنده شما بررسی می‌کند و شما در عوض غذاهای بی‌ارزش، سالاد یا تکه های میوه را انتخاب می‌کنید. در قفسه فروشگاه کتابها و مجلات مختلفی وجود دارد. شما می‌خواهید از مجلات زرد بردارید، زیرا پر از شایعات جذاب درباره ستارگان سینماست و قیمتش فقط چند دلار است. اما در عوض تصمیم میگیرید تا با یک جلد از کتاب مزیت شادمانی به اتومبیلتان برگردید یا 20 دقیقه پیاده تند در اطراف پارک انجام دهید. در حال نوشیدن قهوه با دوستانتان هستید و آنها شروع به شکوه و گلایه درباره کار، کار و شغلهایشان می کنند. در عوض شما راهی برای تغییر موضوع پیدا می کنید زیرا میدانید که اگر در طی ثانیه آینده صحبت به مسیری مثبت نرود مجبوری دلیلی برای جدا شدن از آن جمع پیدا کنید. شما با آگاهی از اینکه به کجا می خواهید بروید و نحوه عملکرد برتری خفیف در رساندن شما به آنجا اصلاحات لازم را به طور خودکار انجام می دهید شما آن انتخاب‌های درست را برمی‌گزینید و کارهای ساده و به ظاهر بی اهمیتی را انجام می‌دهید که شما را به سوی پیشرفت در منحنی موفقیت رهنمون می‌سازند. شما کتاب‌های خوبی مطالعه می‌کنید و به فایل‌های صوتی الهام بخش گوش می‌دهید. با افراد موفقی وقت می‌گذرانید که شما را توانمند می‌سازند. شما یکی از آن پنج درصد می‌شوید، یک برنده، یک آدم موفق. انگامی که برتری خفیف را کاملا بشناسید، پی می‌برید که برای رفتن از نقطه الف به ب، زمان بسیار زیادی را از مسیر درست منحرف هستید و میفهمید که آن اصلاحات کوچک و به ظاهر ناچیز، بیشترین تأثیر را در زندگیتان دارند. جان مکدونالد، نویسنده ی کتاب پیام یک استاد، این ژیروسکوپ درونی و نحوه عمل آن را به زیبایی توصیف کرده است. بارها و بارها برمیگردید تا در مسیر درست قرار بگیرید. چه چیزی شما را هدایت می تصویر ذهنیتان از جایی که میخواهید به آن برسید. شاید این عبارت را شنیده باشید: اهمیتی ندارد که چگونه کارتان را برنامه ریزی کنید؟ مهم این است که چگونه روی برنامهتان کار می کنید. این عبارت تقریبا درست است اما یک استراتژی سفت و سخت برتری خفیف به معنی انجام دادن همزمان هر دوی هاست. برتری خفیف یک فرایند است شما دائما راهتان را انتخاب می کنید، بالا رفتن به همراه آن پنج درصد یا پایین آمدن با آن نود پنج درصد اینطور نیست که فقط یک بار این انتخاب را انجام دهید و بعد بگوید خوب کارم تمام شد حالا در وضعیت خوبی هستم شما لحظه به لحظان را انتخاب می کنید و برای باقی عمرتان هر روز و هر ساعت آن انتخاب را ادامه می دهید در ابتدا این کار به آگاهی و هوشیاری مداومتان نیاز دارد اما پس از مدتی ژیروسکوپ درونیتان آن را آنقدر خوب یاد می گیرد که کاملا غیر ارادی می شود اینکه آن انتخاب غیر ارادی شود یا نه تفاوت بین ولگرد ساحلی و میلیونر بدبختی و شادکامی و زندگی روی منحنی شکست یا منحنی موفقیت را به وجود میآورد افکار شما همچون سکه جادویی ارزشمندند همیشه یک تفسیر پیوسته در ذهن شما در جریان است و به احتمال خیلی زیاد در بیشتر مواقع حتی از چیزی که میگوید آگاه نیستید. گاهی اوقات آن تفسیر پیوسته حتی به چیزهایی که با صدای بلند به خودتان میگویید سرازیر می شود، اما در بیشتر اوقات این تفسیر پیوسته همان صدای آرامی است که بین گوشهای شما زمزمه می شود و هیچ زمزمه‌ای قویتر از آن وجود ندارد. اینکه ناپل اونهیل عنوان کتابش را کسب و کاری عالی ایجاد کنید و ثروتمند شوید یا کارهای درست انجام دهید و ثروتمند شوید یا اقدام کنید و ثروتمند شوید نگذاشت دلیل خاصی داشت. قطعا انجام دادن کارهای درست، اقدام کردن و ایجاد کسب و کارهای عالی همه چیزهای خوبی هستند. اما ناپل اونهیل میدانست که اینها اصل موضوع نیستند. او این راز را میدانست که ثروت واقعاً چگونه پدید می آید. او نام کتابش را بیاندیشید و ثروتمند شوید گذاشت و این کار را به همان دلیلی انجام داد که جیمز آلن کتاب فوقلادهش را تو همانی که می اندیشی نام گذاری کرد نه تو همانی که انجام می دهی افکار و اندیشه های شما یکی از قدرتمندترین ترین نمونه های برتری خفیف هستند افکار شما خودشان را با قدرت بهره مركب تکثیر می کنند و مانند یک سنبل آبی ذهنی اغلب در مدت زمانی بسیار کمتر از چیزی که انتظار دارید به جایی می رسند که استخر ذهن شما را می پوشانند. این واقعیت افکار مثبت و همینطور واقعیت افکار منفی است. همانطور که قبلا دیدیم حتی در عبارت مراقب باشید چه آرزویی می ممکن است به آن برسید موضوع درباره آرزو کردن نیست بلکه درباره چیزی است که به آن فکر می زیرا چیزی که به آن فکر می کنید وقتی که با اقدامات و زمان تکثیر می همان چیزی را خلق می کند که به آن دست پیدا می شما به واسطه قدرت افکارتان تاثیرگذارترین و با نفوذترین شخص زندگیتان هستید. به این معنی که در تحلیل رفتن تدریجی موفقیت‌هایتان و نیز در تقویت و پشتیبانی از موفقیت‌هایتان هیچ کسی تاثیرگذارتر از خود شما نیست. هدف از سرمایه‌گذاری روی خودتان کسب مهارتها یا تسلط یافتن در حوزه‌های خاصی از دانش نیست، اگرچه این موارد ارزشمندند، هدف اصلی نیستند. هدف اصلی از خود سرمایه‌گذاری آموزش این موضوع است که چگونه فکر کنید و به چه چیزی فکر کنید. بنابراین بیایید بررسی کنیم که افکار ما واقعا چگونه عمل می کنند. مانند یادگیری افکار ما نیز دو نوع هستند و بسیار مهم است که بدانیم چگونه با یکدیگر همکاری می کنند. مغز انسان پیچیده ترین و قدرتمندترین ابزار پردازش اطلاعات است. مغز شما از حدود 100 میلیارد نورون ساخته شده است و در هر ثانیه ظرفیت انجام دادن حدود ده کادریلیون عملیات منحصر به فرد را دارد. در هر ثانیه از هر روز مغز شما میلیاردها فعالیت متابولیک را که در سراسر بدنتان رخ میدهد بدون آگاهی شما پیگیری می کند و این کار را در هر ثانیه‌ای زندگیتان انجام می دهد اما موضوع خاصی درباره مغز وجود دارد که بسیاری از مردم از آن بیخبرند و آن موضوع این است که قدرت واقعی مغز در کجای آن نهفته است دو نوع کار کرده بسیار متفاوت در مغز وجود دارد، زمیر آگاه و زمیر ناخد آگاه. زمیر آگاه شما همان بخشی است که فکر کردن را انجام می دهد و در هر لحظه فقط بر یک چیز تمرکز می کند، چیزی مانند پرتو نور چراقوه قوه در یک اتاق تاریک. زمیر آگاه در کاری که انجام می دهد فوقلاده قوی است، اما دامنه آن بسیار محدود است، مثلا بسیاری از مردم نمیتوانند در یک لحظه بیش از تعداد انگشت شماری از اعداد را در ذهنشان نگه دارند. می توانید این موضوع را امتحان کنید. دفترچه تلفن را باز کنید و سه شماره تلفن را به طور تصادفی بخوانید. سپس دفترچه را ببندید و ببینید که آیا می توانید حتی یکی از آنها را به یاد آورید. اما زمیر ناخداگاه می تواند میلیاردها شماره تلفن را به طور همزمان به یاد آورد. اگر زمیر آگاه شما مانند یک چراقوه است و در هر لحظه فقط یک شیء را روشن می کند، زمیر ناخداغاه شما مانند نورافکن بسیار قوی است که همه چیز را به یکباره روشن می کند، اما فقط در یک سطح ناخودآگاه. زمیر آگاه شما به راحتی منحرف و پریشان می شود. افراد معمولی در هر دقیقه 6 تا ده بار تمرکز آگاهانشان را از دست می دهند، تمرکز ناخداگاهشان را چند بار از دست میدهند؟ هیچ وقت؟ مگر اینکه بمیرند کدام یک همه کار است؟ راز سرنوشت شما در همین جا نهفته است و بسیاری آن را درک نمی کنند. به نظر ما کارکردهای های زمیر خداگاهمان، یعنی خواسته ها، تصمیم گیری های آگاهانه و تفکرات آگاهانه به نوعی خودمان است و زمیر ناخودآگاهمان را چیز مبهمی میپنداریم که در پشت صحنه در حال وقوع است و خیلی هم مهم نیست. اما حقیقت این است که زمیر ناخداگاه تقریبا همه چیز را اداره می کند. این را امتحان کنید. دستتان را مانند علامت لایک مشت کنید و مشتتان را در امتداد بازویتان در راستای افق نگه دارید حالا به ناخون انگشت شستتان نگاه کنید از این فاصله سطح ناخونتان تقریبا همان حوزه دید قانونی شماست که چشمانتان میتواند تواند بر آن تمرکز کند همه چیزهای دیگر در حوزه دید پیرامونی شما قرار می گیرند این مثالی از زمیر خداگاه و زمیر ناخداگاه است زمیر خداگاه شما می تواند به خوبی تمرکز کند اما در هر لحظه فقط بر روی یک بخش کوچک و ناچیز از زندگیتان تمرکز می کند. زمیر ناخودآگاه شما آمار همه چیز را دارد. آیا تا کنون در حالی که ذهنتان مشغول بوده است، در یک مسیر آشنا رانندگی یا پیاده روی کرده اید؟ مثلا درباره اتفاقی که در مدرسه پیش آمده بود یا فیلمی که به تازگی دیده بودید فکر می کردید و ناگهان به مقصدتان رسیدید؟ و تقریباً اینطور طور بوده است که حتی نمی‌دانستید چگونه به آنجا رسیده اید. این مثالی از خلبان خودکار است زمیر خداگاه شما مسیر را آنقدر خوب یاد گرفته بود که آن را به زمیر ناخداگاهتان تحویل داد درست مانند روشی که بند کفشایتان را می‌بندید یا طوری که گام بر درست به همان شیوهی که وقتی شخصی اسمتان را صدا می‌زند جواب می دهید بله؟ درست تمانند همه آن کادریلیون کار کرده متابولیکی که بدون فکر کردن انجام می دهید. واقعیت این است که 99 و 99 صدوم درصد از همه ی کارهایی که انجام می دهید با خلبان خودکار انجام می شوند و همه ما 99 و 99 صدوم درصد از زندگیمان را بر روی حالت خلبان خودکار سپری می کنیم. به عبارت دیگر به همان شیوهی که شروع به قدم زدن می کنید و حتی بدون فکر کردن به آن سر از خانه در میآورید بسیاری از مردم نیز به همین صورت به سی، پنجاه یا هفتاد سالگی می رسند چگونه به اینجا رسیدم؟ با خلبان خودکار چه چیزی تعیین می کند که سر از کجا در میآورید به این بستگی دارد که چه مسیری را در ناخودآگاهتان برنامه ریزی کرده باشید و می توانید اجازه دهید که این مسیر را دیگران یعنی مدرسه والدین، معلمها، دوستان و حتی تلویزیون برایتان برنامه ریزی کنند یا اینکه می توانید خودتان آن را برنامه ریزی کنید کاملا به خودتان بستگی دارد. بنابراین شما مسیر زندگیتان را چگونه برنامه ریزی می کنید؟ آن انتخاب هایی که می کنید؟ و تصمیماتی را که زمیر ناخداگاهتان برایتان میگیرد چگونه تعیین میکنید به همان شیوه ای که یاد گرفتید بند کفشهایتان را ببندید ابتدا آن را با اراده و زمیر خداگاهتان انجام میدهید و سپس بارها و بارها آن را به شیوه برتری خفیف تکرار میکنید تا هنگامی که به زمیر ناخداگاهتان تحویل داده شود در آن نقطه این عبارت جادویی پدیدار میشود آن کار غیر ارادی میشود داستان‌های شخصی از خوانندگان کتاب جین لمان، لکسینگتون، ایالت میشیگان. کتاب برتری خفیف خصوصا در زمینه پیشرفت شخصی برای من بسیار مفید بوده. همیشه اطرافم هم افرادی بودند که می‌گفتند مطالعه یک کتاب چیزی غیر از اتلاف وقت نیست، اما من روزانه حداقل ده صفحه از یک کتاب خوب و مطالعه میکنم. در سال گذشته پونزده کتاب خوندم و دانش و طرز فکری به دست آوردم که خیلی گرانبها و ارزشمنده جیمز فورتنر، نیوهی ایالت میزوری وقتی که نوزده ساله بودم با فلسفه برتری خفیف آشنا شدم قبل از اون هرگز فکر نمیکردم بتونم کار بزرگی تو زندگی من بدم نمیتونستم با غریبه ها صحبت کنم و به برقراری ارتباط با دیگران علاقه نداشتم. شخص دردسرسازی نبودم و به متوسط بودن راضی بودم. تو دوران دبیرستان شاید متوسطی بودم و در اولین سال دانشگاه ترک تحصیل کردم. بعد از خوندن کتاب برتری خفیف فهمیدم که چیزای بیشتری میخوام شروع به مطالعه کتاب خیلی خوب دیگی کردم و تغییر و تحولم شروع شد. خیلی زود متوجه شدم که میخوام موفق باشم و شروع به صحبت درباره موفقیت با بقیه کردم. در هر شغلی که بودم خیلی زودتر از افرادی که سالها تو اون سازمان کار کرده بودند مستقیما به سوی جایگاه مدیریت میرفتم و مهمتر اینکه حتی افراد موفق مجزوب رفتار و انرژی من میشدن. هیچ وقت یادم نمیره که یه روز وقتی داشتم تو باشگاه ورزش میکردم یه ساخته اون ساز خیلی موفق اومد سر صحبت با باز کرد. اون گفتش که یه مکان عالی واسه کسب و کار جدید داره و اگه تمایل دارم با کمک مالی اون شرکت جدیدی رو را اندازی کنم و بعد از طریق درآمد حاصل از کسب و کارم کمک مالی اونو بهش پس بدم. به من یه واقعی کلمه دیگه شانس در خونم رو زده بود منم به صورت قاپیدمش. الان کسب و کارمون عالی شده بعد یه سال هم از دیگه با موفقیت داره فعالیت میکنه منم تصمیم دارم در سال آتی الان سی و دو سالمه و اگه اصول برتری خفیف و سرمایه گذاری روح خودم با خوندن روزانه ده از یک کتاب خوب نبود هیچ وقت هیچ وقت آدمی که امروز هستم نبودم نکات مهم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حوشمندانه ترین و خردمندانه ترین سرمایه گذاری شما سرمایه گذاری بر روی یادگیری و رشد مداوم خودتان است یادگیری از طریق مطالعه و یادگیری از طریق انجام دادن یعنی یادگیری کتابی و یادگیری میدانی دو پیستون اصلی موتور یادگیری هستند. در مسیر رسیدن به یک هدف بیشتر اوقات از مسیر درست منحرف خواهید بود. به این معنی که تنها راه رسیدن به یک هدف از طریق اصلاح مداوم و مستمر مسیر است. بیشتر زندگی شما یعنی 99.99% و 99 صدم درصد از چیزهایی ساخته می شود که شما با استفاده از خلبان خودکار انجام می دهید. به این معنی که ضروری است که عهدهدار و مسئول آموزش خلبان خودکارتان باشید.